ارحمه رحمتی که یا ارحمه رحمی هر که چون مسئله نسبتا مهم نیست مسئله جنا در فقه اسلامی به طور کلی و تحت محرک آراش شده که دیروز که خوندید آره اهل سنت رو معلوم شد که چقدر اینها در این مسئله اختلاف شدید به اصطلاف حضرات اهل سنت این اختلافی در کتب اهل سنت هست در روایات ما در این مقدار این اختلافات نیست در هر حال هم بازم این مقدارش شما سلم کتاب من امروز اشتباه موکنم بله از که بله بله اینم از این کتاب رو اشتباه جلده در بنابرای بیوه ده بود. فردا هم گذاشته بود خیلی خوب حالا یک فقط در این کتاب فرد در این جلد دهشم هم یک حدیث در باب غنا داره لیکن دیگه حالا ما بحث بگذاریم در همون کتاب اصلی که محل کاره فردا مجبوریم به خود یارم رو بیایم وقت کتاب ببینید اصلا که نکات فنیش رو فردا متعرض کلیاتش و کلیات این به ذهن خود ما سبب اختلاف در مسئله یه جنا در روایات احل سنت که واقعا هم تجباوره یعنی گاهی انسان در یک عجیبی در غذایان همین روایتی که دیروز خوندیم از این کتاب نیلول اوتار که در این کتاب هست یه چون نمیخوام بشه که هزول فرمودن که سیعتی اقوام من اممتی یا سهلون حالا از خرزی ها چیز دیگه ای که ضبط کلم اختلاف دارن وله خنر والحقیق ول معازف این حدیث در کتاب کافیست در کتاب است که دروز ارز کردیم ابن حضم اشکال سندی بشیرسته این یکی از نقاط محل کلام در کتاب بخاریست بحثیم طولانی دارن خود این حدودشات یک سفت بحث راجب این جرد و البته سعی کرده که کلام ابن حض درست نیست باطله و مطلبی رو که بخاری گفته درسته و درسته مثلا معنای درستش هم اینه حالا دیگه اون بحث رو بارده میشونی کن بحثیب هست لیکن تعجب اینه که در کتاب بخاری همین حدیث حالا غیر از این که ابن حض سعی کرده حدیث رو تضعیف بکنه همین حدیث با سند و همین سند آخرش در کتاب ابو داود ظاهره آمده یا ابن ماجی عبو داود به نظر عبو داود باشه مثلا همیتونه سر که اقوامنو یا سهرین اینه هم فقط معاذت و انداخته این من یه روز یه توضیحی دادم من قبلم توضیحش دادم فکر نمیکنم که این مطلب به کتاب بخاری و سه ها هستش باشه هست کردم در مجموعه روایاتی که در آخر زمان هست و مسائلی که هست توی عده ایشون داره که همین معازف و قیان قیان جمعه قینه که پیزکی که برای رسا خانندگی و مطربی بوده بعد معلوم شد که اصلا مشکل بالاتر از اینه در بخاری معازف رو داره ابو داوود معازف انداخته یک سند یک من همه الفاظ دوست و کلمه معازف رو هنس کرده اینشون میده که واقعا مسئله یک مسئله شدیدی بین اهل سنت در این جهت بوده البته اون روایت بخاری را مثل ابن حزم سعیشون ده سعی کرد یک جوری مناقشه سردی بکنه و شرح بخاری هم توضیحاتی زاد که چون بحثه تخصصی خودشونه مربوط به خودشون میشه من وارد اون بحثا نمیشه پس یکی از عواملش این اختلاف شدیدی که در این جهت بوده از خیلی اصولاً در دنیای اسلام جمعه از محرمات رواج شدیدی پیدا کرد اصلا فرسته خون و اینکه خون حرام بود مثلا نقل نشده که مردم خون بخورن اصلا. یا رغبتی بشه اما راجع به شراب به عرص حتی امیر المانون و خلافاشون هم میخوردن حللی هم میخوردن قدرشون هم افراد میکردن مزاقم به این که براغبای اصلا تو جامعه اسلامی شراب خروشی حللی بود تو خود بغداد مثلا علانی بود ولذا در همین تاریخ تاریخی نگاه بکنید و غیرش باعایو حنابله حنابله مثل و های زمان ما اینا یه می گای میشنن میشدن گویی میشدن میوفتن هر چی شراب پوشی میشود شراب میشوندند خمای شراب میشوندند میریخن و سه امل ورود نیاز من کرد شبیه همین کار کلان در زمان ما. در ازم که مسئله ی غنا هم مثل شرابه یعنی این دوتا و که دلیک مثالی دیگری که استاجی رولاب باز بوده مثلا ربا این همه تحکیب در باب روا و لزام در خیلی از روایات در علامات آخر زمان مسئله زور روا و انتشار رواست. من یعنی از کردم. از محرمات این طوری شد که در دنیای اسلام رواد شده شده. این حالی که متصل می شد به مسئله خلافت و فمیر مؤمنین و حاکم و پادشاه این دیگه بیشتر مشکل درست می کرد. و این اختصاص نداره دا این بنظر من کسی که با تاریخ آشنا باشه مثلا فرض کنید در این مساله ما در حدود مثلا که مرحوم آقای امینی 116 نفر رو در 114 نفر شماره گذاری کردیم در اول الغدیر 114 نفر از صحابه حدیث قدسی نقل کردند صحیحا و سلیما البته اشتباه نشه مهم همین سیان صحیحا و ضعیفا مضمون اساساً شما اصلا به این که می‌رسید، مثلا میشه بوده تا. تا یکی بیشتر به می رسید، میشه. به تاب اتابعین میرسید میشه پنجان تا چون حدیث و به خلافت بود در اون اهد صحابه روات شرامانه هرچی این تر میاد یا تقل نصال عدد. عدد کم میشه شما در مسئله یه طلاق مکره شما تو اقبال صحابه بیشتر روات خب روات ما داره که باسه ده. فتواه های اصحاب ما تو اقوال صحابه بیشتر بسلان باشه هرچی این طرف سر بینید فقه هاشونو به این فقه ها میگن درسته چون از اون امره و خلاف ها اگر میفهمیدن مثلا فلان شخص مثلا زن خوبی داره اجوارش به طلاق کرده. افتواه برد اینا به خاطر دستوهای خلافه مجبور بودن اگر این طلاق درسته شما تو فتواه های اگر دقت بکنی واقعا عجیبه در عهد مثلا صحابه بیشتر قالب به هست این طرفتر سهیان قالب سه این حتی منجربه این مجده که حتی مسئله اصولی هم درست بخنن که نهی در معاملات مختصی بطلان نیست یعنی <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> برفرزن نهی از طلاق مکره باشه این نهیه مختصی بطلان طلاق نیست طلاق درسته این یک حوشویالی خاصه می کنم کنیم مجموعه رواياتی رو که در این جلد و کلمات یعنی انسان احساس میکنه از زمان صحابه از زمان تابعین خیلی اصرار شدید بوده روی اجتناب از بنا که خوندیم رواتشو از صحابه که مثل عبدالله بن مسعود سه مرتبه یحلف بالله و الله انه هو الغنا خیلی عجیبه الله حدیث و قسم بخاله ابن مسعود و معذاره خب بلا اشکال در دستگاه خلفا و بعد خود مدینه ارز کردم اصل اشکال در خود مدینه بود و بعدم در دستگاه خلفا دیگه متعارف شد یکی از متعارف به متعارف ارز کردم اون ابراهیم ابراهیم بولان که عموی معمونه، اصلا این خودش مغنی بود خود این خلیفه هم هست یعنی به اصلاح بناهباسه این خلیفه, مغنی بود. این این خلیفه اصلا. مغنی خلیفه شد اون مدتی که محمد امین رو کشتن تا چون بعد بنی عباس زیاد نکردن با معمون بخوازیه که ایشون رو حضرت رضا رو ولی قرار داده بود با این ابراهیم ابراهیم و فلان ابراهیم موسی بود که عباسی که خود خدا مقنیس ایشون, ایشون خلیفه دقیقاً و اما وجود مغنی های معروف در دستگاه بنی عباس و در بغداد به طور کلی کنی این قطع دیگه ماشاءالله ترامانه میگم 26 تا 25 کتاب بله فقط انواع اقانی است که اینها خود ایشون 300 تا 60-70 رو تا زمان خودشون رو نرشته طبعا نصف بنی حباس زمان ایشان نصف بنی عباس تا زمان خودش رو یاد داشت کرده این شمع. تا ببینید رو بقیه مثلا چه اوزایی داشته لذا عرضز می‌کنم مسئله یک معلوم میشه که یک وضع غیر تبیعی پیدا میکنه در دنیا اسلام که واقعش معلوم میشه رسیدن به اون لب به رو و کاملا مشابه کرده. شواهدی رو که ما در می بینیم برای تجویز رنا که امروز میخواستیم از اون کتاباب بکنن فر از مصشه میکنیم. به نظر ما اون ترییشه گفت اثر اثرش، برمیگرده به آئشه امسال آئشه همین حدیثی رو که از کردیم آبا من این توضیح بینه یک ذرافت در متن داره که از رو کتاب میخونیم این حدیثی که آئشم یه روزه ایدی بود و پیغمبر پیشنام بود پدرم وارد شد به اندی جاریتان توغنیان قالت ولی به مغنیت این. وقال اووبک و مزماارت وشیطان که بتر از اندررس و اینا یا مضور شیطان مزمور و مزمور هر داشتاش شده مزما هم در شده مزمارت, شده مزمارت و شیطان دو سه م در شده و همش تقبا به یک من است. بعد داره که پیخمبر اونجا زیر مثلا پتوی بودن به حافی بودن سر شما گوندهدن ده وما یا عاب بک این هاها اگه او ایده. امدهی روایتی رو که اهل سنت به سر سریع تو سریع مسلم هست و سریع بخاری هم هست از اجایب اینه که سریع بخاری دو, دو مرتبه هم آورده توی باب ایدین ایدینش مال کتاب و سلات اول کتاب بخاری دو با باب دو و باب, باب سه باب یک اختلاف محن و سلم دو باب کشتر هم آورده هم باب دو آورده هم باب سه و بعدم نقل نرمی میکنه آیشه که سیاه ها در محصد آفریقا آ با اود و با اود حالت جنگی ها به حالت عملیات نمایش انجام میدادن دادن و درق درق مثلا مثل کلمه جمع کلمه درقه برمه سفر ترس مثلا مترست با سفر و با این ها مثل رخت جنگی مثلا حالت جنگی میگه من پیش و پیخمبر ایستام اونا نگاه مثلا اینکه خسته شده الان یا حاله اون که در اینجا هست این امدش همین حدیث جناب عایشه است اینشالله عبارت ابن حجر هم میخونیم ایشون میگه با حادر حدیث استذلت صوفیه بر حدیت قدام و همین حدیث آیشه بلاته خب واقعا اینشالله فردا قصود حدیث همون تحریز میشه این شو دیگر آن بخوام بگیم تکرار میشه وقتی امروز و فردا مرسه یه بار بگیم حالا بگیم روز کتاب روش شما اگه که ان شاء توضیح شده اونجا اعتراض قائم کرد مشکلات اون حدیث چیه حدیث انصافا ابهام های زیادی داره اشکالات زیادی داره و خود اهل سنتن سعی کردن با به اصطلاح ابن تعبد و با ابن یومی و یوسن با اله معروف با کوش و و به استدلالات دور سو کردن الا رو باید انصافا مشکل داره یکی از دو تا حدیثه که پیغمبر فرمودن که شعر خون در حیا چناكم جناكم. بیچاره ما هم داشتیم و امام انکار کردن نقی نغینه اون امام انکار کنه از متن که در کتاب ابن ماجه است این طوره این متنی که در کتب موامده یکم مشتبه جناكم جناكم حیناكم حیكم متنی که پیش ما هست اینطوری اما متنی که در ابن ماجه است جناكم جناكم و حیاكم احتمالاً همین درست باشه فحیانا اگر آن خواستن تو حاشیه چون این یک واحدی پیش ما هست و در این رواهت واحده ممتون کرده با علا رسول دار نه پیغمبر این کار مکنه متن درست اون شعر اینطوره. اونم پیغمبر فرموندن که چون رسیم پیش انصار این شعر رو بخونیم فقط همین شعره یعنی شعرهای جهنا کن جهنا کن فحیانا ظاهره نه الله حیانا به قرنه مقامی ف اون است شعری که درخشون این هم برای در روایت ما که در روایت ما جور دیگه شده ذکر شده این راجع این مطلب یکی هم راجع بیگه که پیغمبر آمده بودن این هم در کتاب ابن ماجی که یه روزی پیغمبر در مدینه بودن جوار منبر نجار جواری در لغت عرب هم, هم به کنیز و همه اصلاح میشه هم به دختر جوان اصلاح میشه که اونجا شعری نحن جوار منبن نجاری این شعر اونجا میخونه که اینا میخوندن و عجیب اینه که در اونجا درم میکنه که قالت صاحب الله اینی احب بکنه من شما دوست دارم خیلی عجیب احساس اهل سنت برای حیلیت که کار رو به جاهای خیلی باریکی کشوندن در انسان، هایی که اصلا از انسان عادی هم خارجی به توی ابن ماجی دارن فعلا در از ابن جایی با این ذهب در الله اینی بکنه. حالا یه این هم یکی از احادیث اساسی اونها یکی هم حدیثی که پیغمبر از مدینه وقتی واضه مدینه شدن از همین بلن نجار که طایفه از انصارن، شعر میخونن زنها که ابو مانع مانه شد و پیغمبر ده هنه حتی یه علمالیه بود اندینه نافسی هن این هم این مجموعه البته سند روشنی نداره امدهش همین هم اینی که آیشه نمو که و خودشون صحیحه اینه راجع به این روایت و توضیحات این روایت فردا انشاءالله توضیح بیشتری از سوی خود کتبشون که این صاحب روایت کاملا اشکال داره اصولا به طور کلی به طور اصلا عمومی اون چه در این مطالبه که خیلی خلافه ظاهر میاد خیلی مثلا مفهوم روشه نداره معنای روشه نداره تاجورمون اینه که مثلا پیرمدر 9 تا زن داشتن از این نه تا زن فقط آیشه اینو ظاهرا نهر میکنه خیلی عجیبه چه چیز وحشتناکی که منحصرش یک نفر اونم خصوص آیشه هیچ زنی از زن های پیغمبر چیز این چیزهایی که مثلا پیغمبر مثلا سیاها بودن اونم پیش پیغمبر ایستادیم نگاه میکردیم خب این ممکنه زمان آیشه باشه زمان غیرش باشه اختصاص به آیشه نداره اما توی نقل نغلهاشون از هیچ زن پیغمبر ما نهر نکرد خیلی چه حرفی واغره منحشر نظرهاشون با آیشه برمیگرده و از عجایب کارواز نوبت اینه که مثلا مثل ابوبکر میگه مزمارو شیکان هند رسول الله پیغمبر بیفهمه ده دعهم دعهمو یا ابو او کی لو دادو خب بالاخره یا جایزه یا حرامه دیگه از صورتی خارج نیست اگر جایزه میخواد یومیه باشه نباشه چه فهم میکنه اگر حرامشید یا مری حرام دلال دویش کلی یوم دعوی رسول الله فی که هویوم این تعلیل ده هم ده ما یا فعلا هویوم می‌ده فعلا لكلی اعض رحم رحم احیاس رحم رحم رحم خیلی رحم رحم باز رحم رحم یکیش داره که رحم رحم که رحم رحم رحم رحم رحم رحم رحم رحم رحم رحم رحم رحم رحم رحم رحم اون دو تا کنیز اون دو تا جاریه از خونه رفتن بیرون تحجیب بکنم خب بعد خود ابن حجم می کنیم میگه خب اگه فعل جایز بود فیغمبر اجازه دادن چه داری داشتی این برن بیرون فیل که فیغمبر اجازه دادن وقتی خود فیغمبر اجازه دادن دیگه خم از تو همه فخرجت نمیشه بله این به خاطر احترام پدرش بود این فیل جایز حرفای خیلی به خاطر عمل مشروعی رو که پیغمبر اجازه دارن به خاطر که پدرش اباکش ناراحت نشه اشاره میکنه که از خونه بران بیرون. علایوها وقتی انسان مجموعه اعمال ها رو تو این حدیث میبینه واقعا برای انسان تعجب‌آوری روایت داره که امام طه علیه السلام دارن زدند سلاسلون کان و یک بدون اعلی رسول اهل رسول الله رجلال موردشون از امره معلوم باشه چی؟ یه حرف عجیب و غریبی رو اینا آوردن و همه بر این کردن این مسائل رو پس بنابراین ظاهرش ولی علم و امدالله مشکلات اینه و اما با مجموعه یه روایاتی که از صحابه خودشون نمکنه هست کنم ابن حجم قبول میکنه ابن قبول میکنه که صحابه قائل به حرمت و که میگه لا حجیده که اول عهد دونه برست لم یست بازنه قرآن و روایات شکنه اشکالش اینه و الله قبول میکنه که صحابه و ازشون که صحابه را قبول نمی کنند. لکن این کتاب دیدودان نگر اتاق و صدب عبدالارد مسئول صحیح که تفسیر آیه کرده نمید. و اما روایات ما این من الان بحث اجمالی شو ارزو تا برسه به تقله عبارات روایات ما را هم نظر نهایی راجی به روایات ما انصافا در مجموعه روایاتی که ما داریم که عرف کردن در کتاب جامع الاhadith مجموعه شد 123 تراوتورده ادعی زیادیش از کتب اخر السنهی از انورده ما نیست سقوط رواندی طول لوب و لوا ورده عوالی و ورده زیادی از اینها اندازه زیادیش جزء رواات اصحاب ما نیست اما اون چیزی که در میانه معذره حالا قبل از این در درب شرح که از کتب زیدیه است و از مصادر مهم زیدیه است من بعضی مسئله دیگه رو کنم دارم نشون مراجعه کنم فقط شرار از هار زن ایشون تعبیرش اینه در بحث غنا در جلد چار و زهر بسر نسبت نمیده وقتی یه اطره ظاهر شامل علمه زدیه و علمه جعفریه میشه همشون و زهر بسر و من تابعهم هم اله حرمت به غنا تعبیرشون اینه معلومش این جز مسلمات گرفته که مذهب اهل به اسلام الله این بوده میگه به چه فهد زیدیه فقط من در کتاب الا احکام حسین که فعلا معروف به امام هادی و پیش زیدیای فعلی محض شده البته خود ایشون هم از ائمه شأن خود حساب شرع از ها این کتاب اصلی در اونجا بحث بنار اصلا نمیگه شاید ایشون متعارض شده باشه اما ایشون داره در کتاب شرع از ها مستعمش 19 حلقه افترا و ظاهرا که اسلام من تابعهم یکون تعبیرش اینه و اما در روایات ما که نتیجه نهایی ارث کردیم روایات ما اون که ما الان از روایات داریم به اتفاق یعنی روایت شاد مخالف نداریم به اتفاق ناظر به مسئله حرمت جناس فقط اون مقداری که به اصطلاح به حسب ظاهر ممکن است مخالف باشه یک چند تا روایتی که ممکن باز هزار مخالف باشه یک اون روایت سماه سهل و انعجل مغنیه و ناهه،, ناهه فکره همون این مثلا بگیم کراهت معنی کراهت و مصطلع. اما انصافاً این میز من توضیحش شهر کردم کراهت معنی حرمت شاید اصل اولیش در روایت احلویز معنی حرمت باشه بله حرمتی که از سنت استفاده شده یک حرمتی رو که فقیه استنباطن گفته خوب دقیق بکنیم البته احمد علیه همستان شنرشون نبوده این استلاح بوده یه استلاحی بوده اون زمان وقتی میخواستن بگرد یک چیز رو ما به حسب قوائه نفس سریع نداره به حسب قوائه تحریم کردیم تأبیر به شراحت میکرد تصادفاً امروز که از این کتاب ها نگاه میکنه اونجا دارم بشابه. فتحالباری بود و ابراهیم نخعی امنهو کره اجر المقنیت و نائهه این همین رواست سماهه رو این رواست سماهه رو داره اونجا از کردم نکته فرنیش این بوده چون پیغمبر نهو کردن که نهی تو ان سوتین فاجره من اونه ایکی یکی ایکی مقنیه این آنه سوال میکنه اجرش چطوره؟ چون عرض در روایت نیامده یک نحوه استنباهت حساب میکنن تعبیر به کراحت میکنن که مرادشون حرمته از اون به باید دلیل برس نباهه نمیشه مضافر که بحث دیگری داره اون بحث خب واقعا باید قبول میشه مکنی بحث قابل قبوله و اون اینکه آیا تلازمی ما بین حرمت فعر و حرمت قجرد داری یا نداره تلازم از این طرف و از اون طرف این طرف این. اگر فعل حرام بود اخذ اجره عليه. اگر جایی اخذ اجره حرام بود حلل فعل حرام بود مرحوم شیخ و همینجا صاحب جواهر تلازم رو قبول کردن و حق الیوان تلازم هست انصافا تلازم هست انصافا باید تلازم رو قبول کردن اگر عمل محرم بود اجرت بر او حرام ده. اگر اجرت هم حرام بود اون عمل محرم لیکن توی همه عبارات این نیست مثلا در کتاب نهایی شیخ توسی بحث هنال میاد اول میگه یه رو مرغنا استثنانه میکنه هنال رو حرام میکنه. بعد از دو صفحه بعد میخونم روازشون بعد دو صفحه یا بعد میگه که لای جوز و مغنی و مغنیه الاعراس. یعنی که ما مقوم شیف بگیم این دو تحقیق. یعنی ممکن است بگیم غنا مطلقاً حرامه حتی پل اعراض اما حالا اگه اصیان کرد ذره اعراض خوند پول پولش جایزه ظاهر عبارد چون تو بحث غنا استثنان نکرد توی بحث اجرت گذارانه دو سفر بعد سن. اونی که من از عبارف شیخی فهمم میخوان تلازم و اثبات نکنن باکه انصافا خیلی بعیده حتی یقاب اگر روایت آمد که عجر مخمیه اینجا جایزه مهمش این که قناش هم جایزه شیخ مخوان بگه اگر روایت آمد که عجر اشکال نداره این نیست که قناش اشکال نداره پول گرفتن اشکال نداره اما مهمش این نیست که به اصطلاح خود عمل جایزه که من فکر نمی کنم این مطلب درست باشه اگر توصی شیخ توسی عبدالله سره اگر مراد اینچان این معناه باشه بود دفت بکنه اگر مراد شیخ توسی این باشه انصافا مشکله انصافا از روایتی که صحبت اجر مقدمیه میکنه کنه حکم خود هم در می آن تلازم رو قبول بکنید این از جایی نیست که تفتیقی به تلازم قد بشه پس بنابراین اینه که اگه این روایت سماعه را جا با شد به نظر ما و حرمت اون دلات بر جواز نمید. یکی هم روایت عبوبتی بود. اگه روایت سماعه به استثنای نکته‌ای که ارز کردیم منحصه را هم در کتاب شیخ آمده. شیخ توسی. هم مرحوم کلینی و هم مرحوم سلوم اون روایت حضر کرده. روایت سماه منحص برن در کتاب شیخ توسی قدسان با نفسه آمده و خود ایشون هم مطلقاً عجل مقدمیه رو حرام میدونه لافل ارانس با دو قید که ایشون رو ارز میکنه این هم راجع به این مده یکی دیگه هم که در کلمات از ما بود که متاختری بود روایت عبی بسیر بود از خدم کناره و روایت هرجسی سه متن داره یک متن شاد مشعر باشه که ثابت نشه متنش دو متنش هم باز هم مختلفه فقط یک متنش که شیخ زارن رو قبول کرده داره نابغه به اخذ اوجار در عرائس نیست دلتیت خود که این قید باشه نیست ولسی تنویر نباشه غیض باشه تغیض باشه به بعد می و اگر تقییب رو از توسعه بدیم بگیم اعمال محرم دیگه هم نباشه یکی از خلاقایی رجال کنایه در اعمال محرم مثل آلات و موسیقی اینها اعمال محرم باشه نباشه دو رجال علم نسان اشاره یک نفت باشه الان آیهان تنها روایتی که الان میشه ازش در بود درباب اعراسه و یا روایت عبی بصیره نزیر هم نداره منحصر به فرد هم هست روشن هم نیست همه اصحابش عمل کرده باشه بله این در کافی هم هست در فقیه هم هست در تحضیل هم, هم هست به لغازه مسدر در مسادر متعدل هست همیش هم بهم نیست این هست قبول، قبول، قابل قبول قابل هم ها هست کرده روشن نیست اصحاب این عمل کرده باشه و علا تقدیر العمل علا تقدیر العمل تخصیصه در خصوص عراض مفاد روایت این نیست مفاد این روایت این نیست جواز غنا مطلقه این هم دو تا حدیثی رو که میشه بهش تمسط کرد اینکه سه تا مطمئن داره با اونی که ازاقه بیم که چار تا حدیث دیگه از روایتی که بهش میشه تمسط کرد و تمسط کردن روایت قربل اسناد همیاری که لا معصه مالم یقصه به پس این روایت قربل اسناد یک متنش مالم یق اگر این باشه این اینجور فهمیدن یعنی فی اشکال نداره مگر باشی محصیتی باشه کار حرام باشه ولو خودش فی نفسه جالزه البته حدیث هم بازم در افراد اعیاد فطر از ها، مسئله اید هم انسان بیاد همین حدیث آیشه میدازه که نهو یوم ایده این حدیث موردش در اعیاد پس اگر مرد این طور باشه این طوره و اگر متن مالم یوز مربه باشه که الان در کتاب بهار آمده مالم یوز مربه این معنیش اینه که جناشکار نداره فقط با آلات اشغال داره دیروزم در کتاب احادیث اون دیدید گفتن گفته جناخی نفسه اشغال نداره با آلات باز اون با آلاتش اشغال نداره ولیضا اگر مالم یوزمربه باشه بازه زمار به و ازما معنیش اینه که غینا اگر بدون آلات باشه مجرد صوت باشه اشبال نداره با آلات ملاهی اشبال داره این دوتا مرد از روایت علی بن جعفر این که روایتی که بشه بشه ترسل کرد من کل روایتی که مستدلین به حلیت بشه و توضیحا ارز کردیم یه مطلب جدیدی چون پیدا کرده نمیدم اروز ارزو کنم توضیحا ارز کردیم این روایت علی ابن جعفر نه در ک نه در کتاب فقیح آمده و نه در کتاب شیخ توسی در هیچ یک از این سه مصدر که هر دوشون هر سه کتاب علیه جعفر رو به طریق صحیح داشتن هیچ کدومشون این محل نقلک این را بگی این محل فعلت منحسرن در دو نسخه علیه جعفر هست یک نسخه بهاب یک هم نسخه پربل اصناد که هر دو بلعاز سندی مشکل دارند. و به لحاظ شهرتی هم مشکل دارد فقط یک ای رو من ارز کنم چون تازگی پیدا کردیم من سابقا ارز نسخه ای که در کتاب قربالدسناده هست از کتاب علی روزی حدود دیویستا حدیزه یک از آن خوزالا که خودشم پیگیری میکنه و بقوله مساله به پیگیر چون من زنگ زد چون گفتن دیویستا گفتن یعنی کتاب قربالدسناد که چاپ شده احادیث علیه بن که شماره زده بالای 500 تا است 50 از اون 400 تا یکی یعنی دیگه دوباره با بیشتره گفتم من تو ذهنم مطلب 200 است و فکر نمی‌کنم اشتباه کنم خب الان جلو من کتابراستم میگم در کتاب قربون اسناد که چاپ شده احادیث بالای 500 تاست است شماره که زده 800 اول چی شماره زده رو بردی این بالای 500 تا تدیس به عالیه چطور تو گفتم هم گفتم چون که بعضازه با خودم اعتقاع بخی گفتم من چون اطمینان دارم که مطلب درسته فعلا در این مجرد نقل شما بر نمیگردم و میم بعدکه کردم خودم بهگذاوردیم که هر چیز عجیبی که ازرو عرض بکنیم کتاب در وال اب دو کتاب از عالیه م جفره هم خوب شد این ها با مراجعه کردیم دو کتاب از عیه جفر نقل میکنه واقعا برای ما هنوز یعنی ابهام ما به کتاب قرب الاسناد بیشتر شد به جایی که حل بشه. حالان که ایشون از علی بن جعفر نقل میکنه حدود همون 200 یعنی اشتباه نکرده نیست جندی، ما که تا از 200 اولش هم داره حدس علی بن عبدالله حسن به عنوان حدس عبدالله حسن دیگه علی بن جعفر. تو زیده سابقا دیگه چیز نیست. این متفرقه مثل در احادیث بهار متفرد بعد که این سد و نویت تا طوران میشه باب داره باب و سراطه ای باب باب باب داره یعنی بعد از این حدود دیویستا تو این دیویستا اون وقت باب نداره بعد از این دیویستا باب باب داره عبواب داره باز به با مرتبه عبدالله حسن حضرت یعنی جعفت این حدود سی ست و شاید مثلا شاید در حدود 40-50 تا عنوان باب شدن بیشتر باب و زکار باب همونجور باب داره عنوان عباب داره و این واقعا برای من هم تعجب شد معلوم شد برد این مراجعه من سابقا معلوم شد که مراجعهی که ما سابقا داشتیم تا قبل از عباب بوده توجه کافی نشده اون چه که از علیه دا جعفر متفرقه نحرم کرده حدود دیویستانست که از سرم اون که بعد از علی رو جرفه بازم علی رو و بازم عبدالعبن حسنه نوی ایشان عبدالعبن حسن نوی ایشان نوی علیه این عنوان باب داره باب سلاطه این باب خیلی همین جنفصل باب باب و اینها حدود سی هست خیلی تحجیبابر شد برای ما و سابقا هم ارز کردیم مرموع نجاشی نمشه کتاب از این دو نسخه هسته نسخه مبورد یک نسخه غیر مبورد و نسخه غیر مبورد و از همین همیری از عبدالله حسن نارد خب این هم ما دیدیم توی کتاب از باب باب هست برست دار برست نسخه غیر مبورد لذا ما خیال میکردیم که مرحوم نجاشی اشتباه کرده این کتاب مسئله اینجا جفت هم شده این آین از دوستان ما اشان نوشته که نجاشی اشتباه کرده. و ما معتقد میگم که نجاشی اشتباهشه. برنامه شده نجاشی درست اشتباه اشتباه کرده. انصافا دیگه هم با نجاشی. چیز عجیبیه که ما بر ما شده که بیا این حالا برامون یک واقعا به قول معروف مطلب جدیدی شده که هنوزم یک تفسیری درش پیدا نکردیم. مدتی است راهور ذهنم فکر کردم که یه راه حلی برای این مسئله بشه. این اینو پیدا نکردیم و برای ما واقعا تجربه بره. نکته اساسیش اینه که اولا ایشون حدود دیویستا حدیث و ارده متفرقات. بعد انواب داره و همون سندر هست عبدالله عبدالله عبدالله انجام انجد دیرده این یک که حالا چرا این ظاهرش اینه که باید دوتا باشن نکته ای که خیلی زرافت داره که ما هسته همیشه زرافت ها رو حساب بکنیم تو اون کتابی که مبعبنی نیست و متفرقه است احادیث متفرقه اولش داره حدثنی عبدالله عبدالله عبدالله تصدیح به تحبیز دارم از اونجایی که شروع به باغ میکنه دقیقا مثلا اول باغی که شروع میکنه هیچ وقت و های بعدی من نگاه کردم ترونش را تا آخره که دارم یا با آخره که دارم آخر. توی این ادوابی که اسم میبره یک جا حده عبدالله عمد حسن نمیدیدم خیلی هشی تو غالبش این توزاره مثلا باب و عبدالله عمد حسن انجدی علی موجه. از این که تعبیر به حد نمیکنه، نمی کنه این معناش اینه که به نهم اجاده هست این چیز غریبی کنم میگه هنوزم متحیرم این شرا این طور شده و این احتمالا دقت و ذرافت و هم عظمت نجاشی رو نشون میده چون نجاشی میگه که کتاب متفرقه غیر مبورد و به این اصناد انه عبداللهان رو قال حد دستان این طوری متفرقه هست اون جایی که مبعوضه حد ها نداره یعنی من چاید یا تا آخر عبامش نگاه کردم یا محطمش نه یک بار دو سه نگاه کردم کتاب رو باز با دقیق بیشتری چند باز نمیسی یک دقت نهایی میخواد که احالیس مکرره شده دردیرین این کار رو نکرم الان چیز دریبی که ما در اینجا دیدیم که خیلی واقعا عجیبه که این نشون میده عظمت علمی عبدالله جرور حمیدی بود خیلی عجیبه یک وقت در این مبادت در این که باب بابه یک جنره یه حدثه این عبدالله همه باب و فلا عبدالله همه هستن هرچی در حدیث در زیل عنوان بابه اسم عبدالله همه هست بدون حدثه اما در اونجایی که متفرقات اول شده حدثه این عبدالله همه من احتمال میگم اگر این باشه چقدر هم عظمت مرموم نجاشی ثابت میشه و چقدر عظمت همیری ثابت میشه معروب میشه که عبدالله حسن دو نسخه از کتاب جدهش آورده یک نسخه یه تقیمه مبعبت و متفرگات این رو مردم همیری ازشون سماع میکنه میگه حدث ما عبدالله و یک نسخه مبور اون نسخه مبور رو ایشون اشکال میکنه میگه عبدالران نحسن شاید احتمال داده که تبدیل پای درستی نبوده خیلی عجیب یعنی واقعا اگر این احتمال درست باشه و بعدم وقتی به نجاشی نگاه کردیم ایشون نسخه مبور رو از طریق زیدی ها میکنه از طریق ابن اغده هایی واقعا معلوم میشه که همیری هم مثل ما الان ما بر ما شبه است که در نسخه مبالب ما هم دیگه هم شبه بیدان وقتی بر از طریق زیدی ها و از طریق امامی نواشه این شبه بیدان کنیم اگر این به قطع چون من همیگم اگر چون من سال هاست که نو از اونجا افرگی بردیم این مطلع دو هفته هسترامن بر ما رو چند جد تازگی خیلی هم عجیبه هنوز هم متحیر بکی یک احتمالش اینه که واقعا عظمت علمی عبدالله ابن جعفر هنگیز خیلی معلوم میشه مرد بزرگواری فوق العاده. دو نسخه از کتاب عبدالله ابن حسن عمروزه از در خوب یک نسخه را قبول داره اون نسخه ای که متفرده است با نداره اما اون نسخه ای که عباب داره میگه البته بعض از عباب داره علی ابن جعفر نخید اما موظم ابواب داره عبدالله هست نه هست عبدالله هست در یک جای حد نداره. یک بار حد نداره نه داره اسمی رو تکرار میکنه کنه ذهب باب و خلاه این معنای عبادت چی است که در حقیقت ایشان این روایت رو به نهب رجازه دیده پس کتاب قربه اصنات و این تقریب به قضیم بجردیتی کسی چون نگفتدون این چون حالای این با ما چنین مراجعه بکنه خیلی باوقن اگر اینطوری باشه معلوم میشه البته من یه روز در همون روزی که کتاب قرنستون خوندیم راجع به همین یکی کردم که فوق العاده مرد بزرگوار و جای و عرض عظیم و شریعه این رو گفتن لكن حالا که این عبارت در کتاب شیلن که واقعا چقدر اینها دقیق بودن چقدر فوق العاده بودن با این که دو تا نسخه از یک نظر بود اونم عبد یک رو قبول می یه هده یک یکی رو قبول نمی کنیم یه هده سنا هده سنا نمیاریم خیلی هزم در این احتمال راست باشه خیلی هزم این یک مطلب مطلب دوم این مطلب شرحان خوندیم لا بأس مالم یا سبق که الان خوندیم تو بأس مالم این تو این قسمت دومه تو مبابب به تو اون قسمت دومه که به نحوه جاده است که خود ایشون همونه پرمونده هم نه تو بخش اوله یعنی اضافه بر این که خیلی همزمت انصافن بینه و بین الله اضافه بر این که مشایخ ثلاثه این دارم اطراق مطلب برزون رو شنید شده مشایخ ثلاثه مرحوم کولینی و صدو و شیست توسی این حدیث رو فقط در کتاب باربال اسنادی خود همیری هم اشفال داشته و اگر این مقدمات ما درست باشه چون واقعا ازمت اصحاب از رو نشون بیده که چه زحم... زحمات اینا کشیدن احتمالا در هم نسخه زیدیه بوده چون از کردن شواهد نجاشی نشون بیده که نسخه مبوق رو زیدیه نرده خود نسخه بهار هم مال زیدی و اسماعیل یاسین هم توضیحتو سابقا عرض کردیم پس بنابر این با این شاهد معلوم میشه اصولاً در نسخی که اصحاب ما از علی بن جعفر نقل کردن این حدیث وجود نداره نه با متن مال علی نه با متن مال علی در هیچ کدومش وجود نداره خطای نشاط قابل توضیح دیگه نه درست میشه. ما اول خیال داریم چون اشتباه کردیم گفتیم تو بس که لکه مجبور نه جوری هم چون ما دیگریم تو کتابه می‌برند سر مبتدی هست علی نژاده دقت نکردیم که این دو ساز چه می‌شود دو هفته است بر هر وجهیزه بعد از اینکه متفرقات تموم میشه، علاوه میشه و مجموعاً 500 خورذه ایه. پس این که من میگفتم 200 تا درسته، 200 تا هست و هم درسته، نه نمیفهمه من اشتباه کردم. اون متفرقاتی که با سند واحد 200 تاست، مولودش 300 خورذه ایه. نه 240 و با این صافاً اون مولودش به لحاظ علمی اشکال داره. هم در نسخه گرگل اسمال اشکال داره هم در طریق نجاشی اشکال داره هم در طریق بهار اشکال داره پس این متن علی بن جفر فعلا به هیچ یکی از این طرقی که پیش اصحاب ماست ثابت نیست و لذا انصافا اشکال داره غیر از ها که میخواد برش بشه چنین متنی فعلا این مجموعه واسه پس دانا بر که بر حرمت بنا و تفیرن چه محصرن که قیره محصر؟ قابل قبول وجهه بحث نیست میمونی یک مطلب راجع به اهل سنت به یکی هم تحییل قینات به یکی هم استثنان به یکی